بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و سلال الله سیدنا محمد و آله فاهرین محمد ما با شما داشتیم راجع با احکام لام یا لام تعریف در اول ها خوانده بودیم درسید؟ در کجا؟ لام اظهار میشد و در کجا ادغام می شد، صحیح شد؟ قبلا تحت عنوان حروف شمسی و قمری یا لام شمسی و قمری بحث شده برای ولی در جلسه قبلی ما و شما با دو دسته ای ادغام و اظهار یا اظهار و ادغام خوندیم که در تعداد از حروف یعنی چهارده تا حرف لام ظاهر میشد و در چهارده تا دیگه شنم ادغام میشه درست؟ دارد. مثل که در حسین لام اظهار میشه میشه الحسین سعی شد؟ اما در بعض کلم در علم اظهار میشه العلم درست؟ دارد. اما در بعض از واژه ها مثل شین اینا ادغام میشه میشه از شمس شد؟ آره. این حروف رو که انشالا آشناییم دیگر متوجه میشیم آره؟ این در کجای اسم بود؟ در اول اسم امروز میخوانیم اگر لام در خود اسم واقع شده باشه یعنی در وسط اسم یا در اول اصل اسم باشه تا هنوز که لام میامد علف لام تعریف بود یعنی در خود اسم نبود دیگه نه؟ اضافهگی می آمد. یا در پیش نام در پیشوندش پسوندش آره یا پیشوندش یا پسوندش اگر در خود نام یا در خود واجه پسوند یا پیشوندش باشه چی؟ ما یک علف لام تعریف داریم دقت میکنیم <تصفح> یک لامی که در اسم واقع شده لامی که در اسم واقع شده مثل علی لامش رو اگر برداریم، دیگه علی نمیشه، دیگه چی نیست؟ بردار شد؟ آره، مثل لیلا، دو لامش رو برداریم، دیگه چی نیست؟ فضل آره، عبول فضل، آره، لام آخری، فضل صحیح شد؟ اما انو الفضلش که هست؟ ال، انو الش چیه؟ لام تعریف هست دقت میکنیم؟ لام تعریف هست دیگه یعنی لام تعریف رو اگر برداریم کلمه سری جای خودش میمونه فضل فضل منده دیگه نه؟ اوه. اما اگر لام خود اسم برداریم فضل میشه به کلمه عوض شد براشد؟ سؤال این است ما تا هنوز که لام تعریف رو در اولش کندیم اگر لام در خود اسم چی اولش چی وسطش چی آخرش واقع شده باشن اینجا حکم چیست؟ براشد؟ یاد <سؤال> <سؤال> ما اگر مانده باشه در احکام الله <سؤال> اولاً و دوماً داشتیم اولاً اولاً چی بودن؟ لام الجلاله <سؤال> اه لام الجلاله و ثانیاً چی بودن؟ لام معرفه فی اول اسمان اه حسن و حالا به این میسیم ثالثاً برده صالحا صالحا اللام الواقعة في الاسم الاسم الواقعة في الاسم في الاسم في الاسم, في الاسم. لامی که در خود اسم واقع شده یعنی چی اولش باشه وسطش باشه یا آخرش درست شد اولش باشه مثل لیلا درست شد وسطش باشه مثل علی آخرش باشه مثل فضل کلی که داره درست شد ام این لیلا ببین اولش لام داره علی وسطش لام داره و فضل هم آخرش لام داره الله هم وسطش لام داره الله هم وسطش لام آست آره؟ خ خب فقط مافعللم روی انامه لام ها داره؟ آره آره ای این آره می سال ش سالا ن نیستین لازم نصف این می. اعال حک میشنه و حک ما ها و حکمها, و حکمها الاضحار و مطلقا الاضحار و مطلقا مطلق. و مطلقا مطلقا یا مطلقن اگلی؟ مطلقن که در حالتی وقف مطلق، میشن؟ مطلقا مطلقا میشن احکام وقف را در چی خانده بودیم؟ آره نویشتیم؟ و های یعنی حکم همه لامی که واقع شده در اسم دقیق کنین حکم لامی که واقع شده در اسم اظهار هست مطلقا مطلقا یعنی اولش باشه وسطش باشه یا آخرش لیلا علی فرزن دایلا عقلی یا در قرآن کریم مثال که اونجا هست السینه السینه ال جمعه رسانه دیگر الفافا، ال ال سلقان این بعضی کلمات میشه، میشه، بله بعد الّدّی، الّتّی دقیقه می‌کنیم؟ فتّالی آره آره اینوال دلیلش رو هم بینمیسیم اگر کسی سوال کنه چرا دائما اظهار میشه و مطلقا اظهار میشه چون که لئنه لئنه لئنه یعنی به خاطر که، به دلیل لأن اللام لأن اللام فيها أصلية فيها أصلية. أصلية وليست مزيدة وليست ولایسات مزیده تن نوشتم تماشا شد ثانی گفتیم که لامی که در اسم واقع شده مطلقا اظهار میشه چرا چون که لام در اون اسمها در اون اسم ها اصلی هست و مزید یعنی زیادی و اضافی نیست نیست یعنی نیست و لیست مزیدتا یعنی اضافی و زیادی نیست ولی الف تعریف اضافی دیگه درست حسین آه. الحسین علل دوم خودش رو شد تمام همگی فهمیدیم بله و اولا چی بود اولا اولا چی باشه اللهم في الإسم. في الإسم. أرى. ورابعا بنوسم رابعا. رابعا بنوسم ك اللوم الواقعة في الفعل. أرى. الواقعة في الفعل. فیل فیغل نویشتیم؟ بایی ها یه در صورت سعی کنید ما تو هنوز هرچی بود رجوع به اسم خوندیم در قدم اول رجوع به اسم لفظ جلاله خوندیم درسو؟ در قدم بعدی، الف، لوم، رو در کل اسم خوندیم و در قدم الثوم لامی که مربوط خود ایسم باشه خونده درست؟ حالا چه رسیدیم در اون لامی که در فعل واقع میشنم درست؟ چرا ما این رو چون که احکام لام رو میخوانیم درست؟ دو دانه حرف دیگه که مانده خودمون را و را و؟ نیم نیم و لام و را و, و را لا میش را میخوانیم کدمش مانده؟ و, و را از چی مانده ایلا؟ از حروف تفخیم نه، از حروف, م... حروف تفخیم تخ... تخ... تخ... تخ... احیان شد؟ نه نه چی شما؟ تماما خب، بین ساکنی، یا این خوب نیست؟ یا جیبول ازهارو، یا جیبول ازهار، ای بابا خوب؟ یا جیبول ازهارل یا الواقعة الواقعة في الفعلين في الفعلين دائما <تصفيق> بابا از همیشه ازخار میشه در فیل بری سعی کنیم لامی که در فیل واقع میشه واجب است اظهار شود آه واجب است اظهار لامی که واقع شده در فیل به صورت همیشه گی براشد اگر گفتین فیل چند قسمه؟ فیل؟ سی نوار سی بگین امروزه تا چه؟ داره بیگین؟ فاز پردازی مازی، مزاره یا مستقبل امر امر مستقبل مستقبل مازی گذشته خواهم امر امر گرچه معنیش حال نیست ولی چون در زمان حال هست لزام عمر که بگه حال پامیده میشه مستقبلم آینده از مستقبل مزاره هم بشمید درسته مزاره آره حالا خیره اونا رو باست بردر میخونیم سعی کنید لامی که در فعل واقع میشه واجب است اظهارش به صورت همیشگی یعنی در فعل ماضی باشه امر باشه مستقبل باشه اشکال نداره در کل لگیش چیه یجب اظهار اظهار ال... اللامی دائمان درسته؟ پس حالا فامیدیم دیگه آره؟ دایم. دایم. مثال میرویسیم ذم مثول ماذر دین وسین جہل نہ جہل نہ جہل ہاں آیا نہ گوشون جو بذ امرشان قول یہاں بیگام بنو سین یہ چون زیاد نگیم عجل عجل یعنی چین تاجی از مستقبل شاں یال هو یال یال تحقیق، یال تحقیق، انتقاد، انتقاد، یال هو ال انتقاد التقاط یک مخلوط کردن رو میگه یک جای کردم به تعبیری گادودی گادودی است نه خب سعی کنید؟ نه، شورت راگ نه، گذبادی به منی چود کده بیانید گذبادی یعنی یک طور ارحمدرخم آره نهانجار بودن آره نهانجار بودن چی ها؟ پیشتر چی بفتیم؟ شورت نه نه نه، لا که در فعل و فعل مشد دائما چه میشن اظهار میشن مثل جعل مثل قل مثل ينتقلكم جعلنا ما ام جعلته کرازو یحد نو چی حسب ها یعنی ما رو قرار داد خود جعل به من قرار داده است وجعلنا من القريه تمام ولكن او وجعلنا ك وجعلناهم جهز مش ديال فيلم بود میشه. البته ادامه دار ادامه شربين وسين كي الا إلا إذا جاءت إذا, جاعت. اذا جاعت. بعدها بعدها لامن. لامن او لام أو راء أو راؤم فتور غمو وجوبن فتور غمو وجوبن مثلو مثلو کلا عمل خود نفس و موت آنمو رو کل لا ام لکو ام لکو؟ ام لکو؟ دیگه کل لا لنفس نفقه او لا؟ آره زر ولا نفقه؟ کل لا کجا کل زره و لا نفعه, نفعه. خود لا عمله کل نفسی زره و مثال بعدی شمبی بنویسین وقر رب زبن علمه وقر رب وقر رب رب زدن علما زدن علما و خو آه و خو و علما. نویشتیم؟ خب سعی کنیم در اینجا ما پیشتر طال را که لام اگر در فعل واقع شد مازی باشه مزاره باشه امر باشه باید چی شود؟ اظهار شود خب آلا میگیم که مگر در دو جای اظهار نمیشه کجاست؟ اونی که بعد از لام یا لام باشه یا ری باشه لام باشه مثل چی؟ مثل قلا اینجا کولا مثل اینه که یک لام رفت از باید جایی بعد از لام لام باشه بعد دیگه ببین اینجا کولش، ای لام بعدش باز لام یک دونه لام باشه، مثل تشدی دوری میهن شد کولا یا اینکه بعد از را باشه، مثل وقل اصلش وقل ربیه ولی میخوانیم وقل ربی مشهنه مشهنه؟ لامش دیگه ادغام شده با وجود که پول فعل امر دیگه نیست در این دو جای لام ادغام میشه بقیه جاها دا لام چه میشن اظهار میشه و صلی علی سید محمد و علی <تصفيق>